اصل نهم زنش شب دیر باز آمد و که پا و که پا راه می رفت اما او صدای پایش را شنید چشم کشود اما فوراً چشم هاراب است زنش می خواست گراسیم را مرخص کند و خود که او رو اما ایوانیلیچ چشم کشود و گفت نه تو برو پراسکوب یا گفت خیلی ناراحتی ایوان گفت، مثل همیشه، میخواهی کمی تریاکت بدهم. هم؟ قبول کرد و کمی شربت تریاک نوشید. زنش رفت. ایوان تا ساعت سه بعد از نیمه شب را در فراموشی فلاکت باری به سر احساس میکرد که او را همراه با دردش در کیسه یه تنگ عمیق و سیاهی میچپانند و مدام به زور فروتر میبرند. اما نمی توانند به طی کیسه برسانند و این کار گذشته از وحشتناکی برای او با عذابی نگفتنی همراه بود او می ترسید و در این حال میل داشت به انتهای کیسه برسد و تقلا میکرد که خود را خلاص کند و در این حال کمک میکرد تا فروتر برود ناگهان کیسه پاره شد و او افتاد و به خود آمد گراسیم همچنان روی تخت طرف پای او نشسته بود و به آرامی و شکیبایی چرت می زد و او خوابیده بود و پاهای لاغر جورا پوش خود را بر شانه های او نهاده بود و شم همچنان زیر آب جرمی زوخت و درد همچنان ندابه داشت. ایواردیش آهسته گفت. گراسیم، تو دیگر برو. گراسیم گفت. عیب ندارد ارباب. یک خورده دیگر می منم. ایواردیش گفت. نه. دیگر برو پاهایش را از شانههای گراسیم برداشت و به پهلو غلتید و دست زیر سر و دلش به حال خودش میسوخت صبر کرد تا گراسیم به اتاق مجاور برود و آن وقت دیگر خودداری نکرد و مثل طفلی به گری افتاد بر درباندگی خود میگریست و بر تنهایی سیاه خود و از سنگدلی آدمها و از بیرحمی خدا که رهایش کرده بود با خود گفت آخر چرا این بلا را سر من آوردی چرا مرا را این روز انداختی آخر برای چه چرا من را این جور عذاب می دهی انتظار جوابی نداشت و از آن می گریز که جوابی نبود و نمی توانست باشد در دوباره دوباره شدت گرفت اما او تکان نمی و کسی را به کمک نمی خواند. پیش خود می گفت ترش کن باز هم بزن ولی آخر چرا من به تو چه کردم این عذاب برای چیست بعد ساکت ماند و نه فقط دیگر گریه نکرد بلکه سراپا توجه و نفس در سینه افس کرد مثل این بود که گوش تیز کرده بود اما نه به صدایی شنیدنی که با او حرف بزند بلکه به صدای روحش و به جریان افکاری که در او بیدار شده بود اولین مفهوم روشن و بیان شدری با کلامی که شنید این بود چه میخوایی؟ و باز تکرار کرد و گوه آخر چه میخوایی؟ چه میخوایی؟ و او جواب داد چه میخواهم؟ میخواهم اینقدر عذاب نکشم میخواهم زندگی کنم دوباره سراپا توجه گوشتیز کرد توجهش به قدری شدید بود و به قدری متمرکز که حتی با درد مختل میشد. ندای درونش پرسید میخواهی زندگی کنی؟ چجور زندگی؟ بله زندگی کنم مثل گذشته با آبرومندی و شیرینی ندا گفت مثل گذشته با آبرومندی و شیرینی عیوانیدیش کوشید که بهترین لحظات زندگی دلپذیر گذشته خود را در خیال مرور کند اما عجیب آن بود که این بهترین لحظات زندگی دلپذیر حالا به هیچ روی آنطور که او پیش از آن میپنداشت نبود البته به جز اولین خاطرات کودکی در دوران کودکی چیزی بود که به راستی شیرین بود و اگر میشد به آن دست یافت، زندگی ممکن میبود اما کسی که آن شیرینی را می توانست درکند دیگر نبود. مثل این بود که این خاطرات به شخص دیگری مربوط بود. همین که به مرحلهی رسید که نتیجهش ایوان ایریش کنونی بود، آنچه به نظرش لذتها و شادیهای زندگی آمده بود، اکنون گفتی پیش چشمش زوب میشد و به چیزی بیمقدار و گاهی پلید مبدل می شود. هرقدر از دوران کودکی دور و به زمان حال نزدیک میشد این شادیها در نظرش بیمقدارتر و مشکوکتر میآمدند این حال از وقتی شروع شد که او در مدرسه حقوق درس میخواند آن وقت هنوز چیزهایی براستی دلچسب وجود داشت نشاط بود دوستی بود و امیدهای بسیار اما در سالهای آخر مدرسه دقایقی که از این خوبیها نشان داشته باشد کمتر بود. بعد، در سالهای اول خدمت، وقتی که در دفتر استاندار کار میکرد، بعض لحظات خوشی چشیده بود و آن خاطرات مربوط به دلدادگیش به زن بود. بعد، همه چیز آشفته شده و او کمتر رنگ خوشی راستین را دیده بود و از آن به بعد، هرچه زمان میگذشت، خوشی کمتر میشد. بعد، زن گرفته بود. ازدواجی از سر تصادف رؤیای شیرینی که کابوس شده بود بوی بد دهان زنش بود و شهوترانی و دروی بعد کار قضاوت که ملالی کشنده بود و غمه گردآوری مال و اینها همه یک سال و دو سال و ده سال و بیست سال ادامه یافته بود و مدام همان بود و هرچه ادامه میافت می یافت ملال آورتر میشد اصل این بود که پیوسته با سیری یک نباخت از سراشی بیفرومی لازم و گمان می کردم که به سوی قل سعود می کنم. و براستی هم اینطور بود در انظار مردم در راه اعتبار و عزت بالا میرفتم و زندگی با همان شتاب و زیر پایم می گذشت. و از من دور می شود. تا امروز که مرگ بردارم می کوبد آخر چطور شد که به اینجا رسیدم چرا این ممکن نیست چطور ممکن است که زندگی این قدر پوچ و بیمعنا و پلید باشد حالا گیرم زندگی همین نفرت نفرتآور و بیمعناست من چرا باید بمیرم آن هم با این همه زجنو در این فلاکت اینجا چیزی هست که من نمیفهمم ناگهان این فکر از ذهنش گذشته شاید من آنطور که شایسته بود زندگی نکردم ولی آخر چرا؟ من که کارهایم همه شایسته بود و فوراً این یگان جواب تمام معماهای زندگی و مرگ را همچون خیالی موهوم و ناممکن از ذهن خود دور کرد. حالا چه می‌خوای؟ می‌خوای زندگی کنی؟ چه زندگی؟ همانطور که در دادگاه زندگی میکردی؟ مثل وقتی که مأمور اجرا اعلام میکند جلسه دادگاه رسمی شده است ایواندیش پیش خود تکرار کرد جلسه دادگاه رسمی است دادرسی شروع میشود دادگاه هست و رسیدگی به حسابها. ما با خشم فریاد زد ولی آخر من برای چه؟ دیگر گریه نکرد و قلتی زد و به دیوار خوابید و پیوسته در همان فکر پیشین خود بود برای چه؟ این همه وحشت و سیاهی برای چه؟ اما هر قدر فکر کرد جوابی به این پرسش نیافت و هر مار که این فکر به ذهنش میرسید چنان که مکرر میرسید که این مصیبت از آن است شیبه زندگیش نادرست بوده است به یاد می آورد که زندگیش در عین شایستگی و آبرومندی سپری شده است و آن فکر را از ذهن خود دور